زائل و مناغب علی ممنوع شد به جاش سب و لعن علی رو رواج دادن زمینه کتمان حقیقت یه مسجدی در شام هنوز هم جز مساجد قدیمی تجده بنام شده اسم قدیمی داره تاریخچهش نوشته شده مسجد و ذکر من کتابچهش رو دارم تو کتابچهش نوشته شده چرا بهش میگن مسجد و ذکر میگه خطیب نماز جمعه یادش رفت در ضمن خطبه سب و لعن علی کنه یکی از معمومی یادآوری کرد جناب خطیب لعن نکردید علی را گفت به شکرانه این تذکر که من یادم افتاد علی را لعن کنم یه مسجد می سادم رو مسجد ذکر خبر به شام رسید این روزا که علی ابن طالب تو مهراب عبادت شهید شد گفتن علی تو مسجد چیکار کار مگه علی مسجدم میرفته که تو مسجد کشته شده معاویه با امرعاست دستور دادن کتمان حقیقت حقایق رو زیر و رو کنن معاویه با امرا دستور دادن بغالههایی رو تو بچه های شام تقسیم کنند بچه ها با بزغاله انس بگیرند و بازی کنن و سرگرم میشن. بعد از ده روز و 15 روز و دو هفته ای که حکم اسب با بازی بچه ها رو داشت کاملا انس گرفته بودن. یه شبیه که بچه ها خوابن معمورین ماعاویع میومد بغال ها رو جمع میکرد می برد. فردا صبح بچه ها از خواب پا می شدن ما کو پدر و مادر معمور بودن این رو بگن اگه غیر از این میگفتن خونه هاشون خراب می شد. خواب بودید علی آمد دزدید و برد. و کینه علی رو در دل بگیرن لذا تاریخ داره وقتی شمر رو سینه ابی عبدالله نشست و شمر رو جالسون علا صدره فأخذ لحیتهو شمر بر سینه امام حسین نشه محاسن مبارکش رو به دستش گرفت فزح کل حسین متن مقتل اینه امام حسین خندید و قال فرمود هل تعرفني میشناسی من کیم قال شمر نعم بله میشناسم امام حسین فرمود من کیم گفت تو مادرت فاطمه هست جد پیغمبر خداست فرمود پس برای چی گفت بغزن لعابیک به خاطر بغضی که با باباد داری وقتی در جامعه اسلامی بغز علی را رواج می دهند در اثر کتمان ما انزل نامنال و بینات نتیجه به آنجا میرسه.